درود شنوندگان رادیو البرز امیدوارم حال دل هاتون خوب باشه در این زمان مهمترین عناوین خبری مربوط به پناهندگان در هفته ای که گذشت رو به سمع شما عزیزان میرسونم از اندونزی شروع میکنیم پلیس اندونزی خبر داد نه پناهجوی مرد افغان و یک پاکستانی به جرم تنفروشی دستگیر شدند پلیس اندونزی میگوید یک شبکه از مردان تنفروش منهدم کرده که از اعضای آن شامل نه مرد افغان و یک پناهجوی پاکستانی می مقام های اندونزی گفتند این مردان با همکاری با دلالان اندونزی در برابر دریافت پول گذاف در اختیار مشتریان مرد و زن قرار می می‌گرفتند. به, سخ... به گفته سخنگوی داریم مهاجرت اندونزی کواد میرود تابعه اندونزی بازدا شده فرد رابط این شبکه باشد و شماری از بازداشدگان از سوی کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان به عنوان پناهجو شناخته شدند افراد مزنون ساکن اردوگاه‌های پناهجویانه نبوده بلکه در خانه‌های مشترک که از سوی سازمان ملل تهیه شده زندگی می‌کردند مقام های محلی گفتند که تحقیقات در مورد این شبکه را در پی دریافت گزارشهایی آغاز کردند، حاکی از این است که این مردان با سیمای خاورمیانه ای در نزدیکی هتلی در باتم دیده شده‌اند که سوار های لوکس میشدند. رسانه‌های اندونزی گزارش کردند که در میان مردان افغان بازداشت شده یک پسر 15 ساله هم بوده است. جزیره باتم در نزدیکی مرز سنگاپور باقی شده است اندونزی مسیر قاچاق پناهجویان افغان به استرالیا بود و پناهجویان از این کشور با قایق عازم سواحل استرالیا می شدند. با به اجرا درآمدن سیاستهای سختگیرانه مهاجرت در استرالیا شمار زیادی از افغان هایی که در صدد مهاجرت به استرالیا بودند در اندونزی ماندند اطلاعات تکمیلی لغو پناهندگی 35 پناهنده در هلند اداره مهاجرت کشور هلند میگوید در اقدامی مشترک به همراه اداره فناوری دیجیتالی پلیس این کشور اقامت گروهی از پناهجویان ای را به دلیل آنچه تناقض در درخواست پناهندگی و اطلاعات سایبری دانسته است لغو کرده است سی و پنج نفر از این پناهندگان اصالت ایرانی دارند و در خلال سالهای 2010 ده تا دو به هلند وارد شدند اداره مهاجرت هلند میگوید تحقیقات خود را در شبکههای اجتماعی از جمله فیسبوک و اینستاگرام را پس از افزایش خطرات احتمالی مربوط به حملههای تروریستی گروههای افراتی و پناهندگان مسلمان وابسته به داعش آغاز کرده و در خلال آن به مجموعی از اطلاعات در خصوص گروهی چند صد نفری از پناهندگان ساکن در این کشور دست یافته است که نشان میدهد این افراد در عقص پناهندگی از دولتهای اروپایی ریاکاری کرده و اطلاعات دروغ از نگرانی درباره وضعیت خود در کشور مبدعشان ارائه کردند. یک مقام مسئول در اداره تحقیقات دیژیتالی پلیس هلند گفته کشف تناقض در اطلاعات ثبت شده در مدارک و درخواست رسمی پناهندگان و فعالیتشان در فضای مجازی خصوصا در فیسبوک از شیوه‌های کشف افراد مشکوک به همکاری با گروههای تروریستی و از روش های مرسوم برای یافتن سرنخ های اطلاعاتی در خصوص افرادی است که پلیس با تحت نظر قرار گرفتن آنها می‌تواند از احتمال وقوع برنامههای تروریستی جلوگیری کند برخی پناهندگان افغان ترک عرب تبار و ایرانی در این طرح مورد بررسی قرار گرفتند. اداره مهاجرت هلند گفته با اینکه نتایج این تحقیق در, در خصوص این افراد دیپورت شده به منزله ارتباط با گروههای تندرو، افراطی و یا تروریستی نیست اما دولت هلند این حق را بر اساس قوانین خود دارد که در صورت احراز تقلب هر فردی در اخذ پناهندگی از این کشور با متقلب برخورد کند اما مشخص نکرد است که دریافت کنندگان نامه صلب اقامت اجازه اعتراض دارند یا خیر برخی گروههای مدافعه آزادی بیان از جمله یکی از گروههای مدافعه حقوق نوکیشان حقوق نوکیشان مسیحی در ایران در افغانستان در اعتراض به این موضوع گفتند اقدامات اخیر پلیس هلند مسیاق جاسوسی از شهروندان و پناهندگان و منافی حقوق بنیادین گردش آزانه اطلاعات در و حفظ حریم خصوصی افراد است این گروه متذکر شده با اینکه برخی پناهندگان ایرانی و افغان به مسیحیت روی آورده اما در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی همچنان با سایر اقوام و دوستان مسلمان خود در کشورهایشان ارتباط دارند و در تعامل با آنها از عباراتی استفاده می‌کنند که با اینکه میتوانند شک برانگیز باشد اما در جامعه آنها مرسوم است یک خبر از یورو نیوز براتون میخونم مقامات آلمان روز سه شنبه اعلام کردند که سه پناهجوی سوری را به زن ارتباط با گروه داعش دستگیر کردند این افراد که گمان میرود سال گذشته از سوی داعش به آلمان فرستاده شده باشند در مرکز پناهجوی وله در شمال آلمان دستگیر شدند. آنها سه مرد جوان با ناپای ماهر، محمد و ابراهیم هستند که بین 17 تا 26 سال سن دارند. وزیر کشور آلمان با اشاره به اینکه شواهدی از اینکه آنها برنامه عملیاتی برای حمله داشتهاند به دست نیاورده است. اما همه شواهد،, شواهد شواهد گویای این واقعیت است که همان قاچاخچیی که با مهاجمان عملات نوامبر پالیس در ارتباط بودن این سه مرد را اکنون بازداشت شده به آلمان آورده بودند. از سوی دیگر شواهد نشان می دهد که مدارک سفری که آنها استفاده کردن در همان مهان مکان یکسان و توسط گروه مشابهی که مدارک مهاجمان عملات پاریس را فراهم کردند تولید شده است ماهر یکی از مظنونان محترم است که در سپتامبر 2015 در رقه مرکز اصلی دژ آموزش کار با سلاح و مواد منفجره دیده و سپس با دو همدستش راهی اروپا شده است. انتقال انتقاد نخست وزیر یونان از تأخیر در انتقال پناچویان حدود 3400 مهاجر غیرقانونی در طول شنب و یک شنبه و یکشنبه توسط گارد ساری ایتالیا از آبهای مدیترانه نجات یافته و به آگوستا در سیسیل واقع در جنوب ایتالیا وارد شدند در همین حال الکسی سیپراس نخست وزیر یونان روز یکشنبه اگرچه نتیجه توافق اروپا با ترکیه را بر سر مقابله با بحران پناهجویان مثبت ارزیابی کرد ولی یادآور شد که دیگر اعضای اروپایی طرف, دار... طرف این قرارداد در اجرای تعهدات خود تأخیر داشتند وی گفت طرف اروپایی تعهداتی دارد که باید تصریح شود ما روند غیرقانونی را متوقف کرده و جریانی قانونی ایجاد کردیم این جریان قانونی چیست این جابجایی از یونان و انتقال مستقیم از ترکیه متاسفانه از هزار انتقال و اسکان مجدد وعده داده شده توسط اروپا برای سال 2016 تنها 3000 پناهجو متعاقب شدند. اتحادیه اروپا به تازگی از برنامه تخصیص کمک بالغ بر 348 میلیون یورویی به پناهجویان در ترکیه خبر داده است. هدف از این برنامه ایجاد شبکه فوریت امنیت اجتماعی و شده که در حال حاضر بیش از سه میلیون مهاجر در ترکیه به سر میبرند و دو خبر از دانمارک براتون میخورم دولت دانمارک 17 مرکز اصلی نگهداری متقاضیان پناهندگی را تا چند ماه آینده تعطیل می کنند. دولت دانمارک روز سهشنبه اعلام کرده که هفده مرکز اصلی نگهداری متقاضیان پناهندگی را تا چند ماه آینده تعطیل خواهد کرد. بسته شدن این مراکز حدود چندین میلیون کرون در سال صرفه جویی خواهد داشت. قرار از متقاضیان پناهندگی در مرکز دیگر ادغام شوند. در ادامه اعلام شد اقدام دانمارک مبنی بر کنترل مرزهایش به کاهش ورود پناهجان به این کشور منجر شده. به همین دلیل مراکز اصلی نگهداری متقاضیان پناهندگی یکی پس از دیگری تعطیل می شرند. و آخرین خبر دانمارک متاسفانه قرارداد خود را با کمیساریای عالی پناهندگی سازمان ملل متحد لغو کرد. نگرانی از لغو سایر کشورها نیز وجود دارد. آخرین میخاب تابوت سیستم پذیرش پناهندگی در اتحادیه اروپا. دانمارک قرارداد خود را مطمئناً لغو کرده است. سعی می‌کنیم به یک گزارش مفصل در هفته آینده در این باره براتون آماده کنم. لب هاتون خندون، دلاتون شاد و سفره هاتون شعط مشت